سلسه شانزه هم الحمد لله رب العالمين و الله على محمد و آله تاهیم و المزاف و علی فیها علی در این اضافه معنایی مزاف و علی در اضافه معنایی ول مضاف و علی فی ها یعنی در این معنی بیدیتون اضافه معنی بیدیت امکانت جنساً للمضاف اگر مضاف و جنس باشه آه؟ یعنی بیانگر جنس باشه برای مضاف مضاف و جنس مضاف رو بیان کنه فهیه به معنی به پس اون حرف جغل مقدره من است و این اضافه رو بهش میگن به معنای من اضافه به معنای من یعنی این اضافه به معنا من اضافه به معنای من که بهش میگه اضافه چی چی؟ بیانه. درست شد مثل چی؟ خاتم فزتن یادتونه صوب و قطنن قطن قوتن یعنی چی؟ با قافوتهای معلفه پنبه صوبو و قطنن یعنی لباس پنبهی یعنی لباسی که از جنس چیه؟ پنبه است خاتم و فزته یعنی خاتمی که از جنس فزته فزته جنس خاتم رو بیان میکنه قطن جنس لباس رو بیان میکنه مشخص؟ مزاف و المزاف و اله فیها انکان جنسن للمزاف و هیه به معنا او زرفن زرفن اتفاست به جای جنسند یعنی اگر مزاف و ظرف زرف باشد لهو میخوره به مزاف برای مضاف، زرف باشه برگیر باشه حالا یا زرف زمان باشه یا ظرف مکان باشه فرقی نمیکنی به معنای فیه مثل چی؟ مثل ما اول کوز ما اول کوز کوز یعنی چی؟ کوزه ما اول کوز یعنی آب کوزه یعنی آبی که در کوزه است یعنی کوزه ظرف است برای ماء البحر آب دریا آه. یعنی بحر ظرف است برای اولی داخل در دو پولیز. مکانی مکرال لیل و نهار مکرال لیل و نهار تو قرآن هم داییم مکرال لیل مکرال لیل چه؟ یعنی مکری که در شب واقع میشه یعنی مکرون به لیله سلات و لیله. نماز شب یعنی نمازی که در شب واقع میشه شب ظرف است برای نماز یا برای مکروهیله و خوده میشه اضافه چی چی؟ ظرفی او ظرفن لهو فبه معنا فی اضافه ما به معنای فیست و اضافه ظرف حالا اگر جنس نبود مضاف ظرف هم نبود مضاف و نلعی مضاف ظرف نلع نبود جنس هم برا مضاف نبود هیچ کنون این دوتا نبود بقیهش دیگه به معنای چیه؟ لا لام دیگه راه چاره سوم لامه دیگه غیر از او نیست او غیرهما یعنی امکان جنسه میشه به معنای مه امکان ظرفه میشه به معنای فی او غیرهما یا غیر اینه یعنی نه جنس نه ظرف مضاف نه برای مضاف تا به معنا الله دیونغه به معنای چیه لام بهش میگن اضافه چی؟ اضافه میگرد مثل غلام و زیده خب. بحث ما تمام شد یک نکته جدیدی رو بیان میکنه که تو این کتاب جدیده باید یاد بگید نگاه کنید وقد یک تسبل و مزافول و مزکر و من المزاف علیه المعنسه تعنیسه و بالعکس قد یک تسبب یعنی چیه؟ گاهی به دست می آورد کسب می کند المزاف المزکر مزافی که چیه؟ مزکر خود مزاف مزکره کسب می کند منل المزاف علیه المعنس مزافون علیه موانس مضافون علیه که این صفات رو داره چیه؟ موانس کسب میکنه چی رو؟ مفعول یک دسته تعالیزه بود تعالیز مضافون یعنی مضاف از مضافون علیه کسب تخفیف میکرد کسب تعریف میکرد کسب تخسیص میکرد کسب تانیز هم گاهن چیه؟ میکنه پد یک دسته گاهی و بود. و به عکس عکسش هم هست یعنی چی؟ یعنی مضافون مز... مهندسه از مضافون الهه مزکر کس تذکیر میکنه مشخص و به اما شرط شرطش چیه؟ به شرط جواز استغناء و بر مضاف به شرط اینکه جایز باشد مستغنی شدن عنه از مضاف به سبب کی مضاف کننده بگو به شرط اینکه بتوانیم مضاف النل را به جای مزاف به شرط اینکه صلاحیت داشته باشه که ما مستغنی بشیم از مزاف به سبب مزاف که قوله مثل قوله این شاعر و تشرق بل قول لذیب قد ازعته دیدید دیدی یا و تشرک بالقوه لذی قانع عزاآت او شرقت صدر القنات مندم کامو شرقت صدر القنات مندم کامو شرقت شرقه یش رقو شرقه یش میتونه مازی شرقه باشه مزارش یش رقو خوشه و بدونه اینکه حرف جی حرف توی هلونفل یا همون طورش خب. و تشرق و بلقول لذی قد ازد شرق شرق یه شرق شرقن یعنی اینکه که انسان آب دهانشو نتونه خود به تو گیر کنید چی میگن؟ یعنی دایی اوقات آب میپره و نمیتونه خود بده نمیش بگن چی؟ شرق که گایی اوقات اگه زیاد باشه انسان رو میکشه تو نحط و داره این آدم این بعد ضعیفه که تختول خوش شرقتون یعنی یک آب پریدن و میگلو و تنده نوان عرقتون یه وارم که عرق کنه دیگه نمیشه نزدیکش آدم میگه خصوصیاتش این. خب حالا میگه و تش رقو و تو گلوگیر میشی یعنی تو گلو گیر میکنه یعنی می بلغول همه با آب گلوگیر میشن تو گلوگیر میکنه نمیتونن قود بدن تو به قول بگفته و تش رقو بلقول اونم قولی که این داره الازی قولی که قد ازه ترو قد افشای ترو یعنی تو یه آدمی هستی اگر حرف تو دهانت باشه قادر نیست اون حرفو قورتش بدیم بره پایین و نگی آ این حرف تو گلود گیر میکنه مثل انسانی که آب به گلو گیر کرده و سرفه میکنه تا اون رو در میاره از مجاری تنفسیش تو همینطوری هستی اگر حرفی به زدشه تا این حرف را از دهان بیرون نیاری آرام تشرق و بلغول نزی اینقدر ازده کما شرقت میگه مثل اینکه شرقت جلوگیر گیر شده صدر و قنات قنات یعنی نیزه صدر یعنی چی؟ سینه همونطور که سینه ی نیزه گلوگیر شده از خون خود نیزه که میزنن سر نیزه داخل بدن مقتول میشه آه کسی که نیزه خورده مقتول سلام بعد سر نیزه که وارد میشه وقتی بیرون بکشن خون بر سر نیزه میمونه خون میدونید دیگه به خاطر مایات داخلش پل و پلاسما این هایی که داره حرکتش بسیار کنده یه مقدار که از روی نیزه میاد پا. این چی میشه؟ خوش کشه میگه ببین چطور خون بر روی نیزه نمیتونه حرکت کنه و به وسط نیزه صدر نیزه که میرسه دیگه گلوگیر میشه و میمونه تو هم همینطوریه هفت و باقی نمیمونه همونجا میمونه تا این که اینش کارش کنی شاهد چیه دقت کنی شرقت فیلش مهنس اومده یا مذکر صدر فایلشه دیگه شرقت فیل صدر و لغنات مذافر مذافر نیده صدر فایلشه و صدر از اعضای انسان مذکره چرا بدنید که یه دونه بیشتر صدر مذکره خب اگر صدر مزکره فایل شرقته و چرا شرقت مهمنس اومده؟ میگه به دلیل اینکه صدر از القنات کسب به چه گرده؟ کرده مندم هم که متعلقه به شرقت شرقت صدر القنات مندم از خونه جارو نجموع به شرقت خب آیا اگر ما اینجا صدر رو حضف کنیم و الگنات رو جاش بذاریم معنا همینه یه همینه به چه بگیم کما شرقت صدر و الگنات مندن همانطور که سینه نیزه از خون خشک میشه چه بگیم چی؟ کما شرقت الگنات رو مندنه همانطور که نیزه از خون خوشک میشه خون برگوی نیزه خوشک یعنی در واقع اگر صدر رو بیاریم نسبت دادیم به جز شرقت رو که صدره اگر صد رو نیاریم نسبت دادیم به چی؟ به کل شروق رو شرق رو نسبت دادیم به چی؟ به کل بردیم نیزه خون برش خوش میشه خب معنومه نیزه کجاش خون برش خوش میشه بر پس جایی که جزا کلن در سوره ی یوسف آیاست میگه تل تغیت هو به از سیارته تل تغیت هو به خوندن تل تغیت هو با توی محلهها التغیت یا التغیت التقاد آن التقادی میگفتند یه در شد یعنی هر چی که این برهم وار چیز مطالب نظرشون دیدن جذب کرد. تلتقت یعنی تنتخب انتخاب کن تل تلتقته بعض و سیارتی بعضی های غیر مشهور داره تلتقته قراعت مشهور داره یلتقته اگه یلتقته قراعت بشه یعنی یلتقته بخوره به یوسف بعض و سیارته یعنی بعضی از کاروان ها یعنی یکی از کاروان یعنی یکی از این کاروان ها این یوسف رو پیدا خواهند کرد و توی چاه یکی از کاروان ها او رو پیدا میکنه یلتقه توهو بعض رو بعضی ها قراحت کردن تلتقه توهو اگه تلتقه او قراحت بشه کلمه بعض از سیاره چه کرده کسب به کرده و مشکل هم نیست چرا چون باز جزءا بگید بعض رو برداریم و بگیم چی تلتقه تو سیاره کاروان ها پیداش میکنه خب مرمو همه کاروان ها که پیدا میکنن کی پیدا کنه یکیش معنا چیه؟ کسبه؟ بگیم بعض از ما بعدش کسبه چی کرده؟ تحزی. یا آیه مشهور دیگری که داریم که اون دیگه دو قرآت هم ندارد آیه کل و نفس چی؟ زائغت الموت کل لفظش مذکره از نفس چکار کرده که مهندسه کسب تنیز کرده به چه دلیل؟ به دلیل که خبرش چی اومده؟ مهندس اومده زائغت الموت کل و نفس زائغت کلو برداریم بگیم چی؟ نفسون زائفتون یعنی هر نفس مطلقه مشخصه؟ یا آیه دیگری داریم میگه چی؟ کلو نفسن چی؟ کلو نفسن به ما کسبر رهی نه نفسن بما کسبت رهینتون الا ال یعنی. از آوری یعنی بگونم صورت کسی میدون صورت مدثر این آیات رو برید نگاه کنید آیات جلوی حالا بحث جاش نیست به کل نفس به ما کسبت رهینتون یعنی کل نفس رهینتون مروونت در گرو است نسبت با آنچه که کسبت کسب کرد کل نفسه نه کل مسلمن ها هرکی از اول آدم اول بشر تا الان کل نفسه به ما کسبت بعد داستان از خواب یمین رو میگه که از جهنمی ها سوال میکنم ما صدق کنفی سفر آخرش میرسه که میگه فما تنفاهم شفاعت و شافعی میگه اینها اینقدر دیگه از درجه اعتبار افتادن تا اینقدر وزرو خراب کردن ما تنفاهم شفاعت و یه شفاعتی هیچ شافعی در حق اونها سود؟ نه معلوم میشه که شفاعت اگر انسان ذره یا داشته باشه میشه اما اینها دیگه همه چی رو خراب کنید و این آیات نشون میده که حالا برید نگاه کنید این آیات نشون میده که نماز خواندن مخصوص اسلام نبوده از اول خلقت تعبول بشر آیات دیگر هم دال ببرین داره از اول خلقت ابول بشر تا آخر مکلف خواندن نماز بودن. حالا آیا کیفیتش چه شکل بوده؟ کیفیت عتم و کاملش در اسلام پیدا شده. حالا بگذر و تشرق تشرق فیل زمیر انت فایلش تشرق و فیل زمیر انت فایلش بلقول متعلق به تشرق الازی صفت الگو و محلن مجروب اصول مدنی قد او قد قد ازعت فعل و فعل و مفکور چه سی دیگه؟ چه بابیه چه؟ بابه افعال ازاع یوزی ازاع یعنی افشا افشا ازا ایوزی و ازا اتن الان دارل ازا به کجا میگن ازا دارول ازا اه مزیاء اسم حاله مزیاء یعنی چی؟ خب چون بخش میکنی ازا اتن فعل و فاعل و با هم که آهل سیلس کما این کما رو قبلا هم مثل این داشتیم گفتیم کافش حرف تشفیه ماشمای مستریگه و مفقول مطلق درست میکنه یعنی غن اصلش این طور بوده سامنه شرقن مشابهن که شرقن مشابهن کشرق صدر القنات مندد اون ما شرقن صدر القنات مندد تحویل به مستر بره چی میشه؟ میشه شرق و صدر القنات مندد کاف بر سرش در بیا کاف دیگه میشه کشرق صدر القنات مندد این کشرق متعلق به یه مشابهنه و مجور باید متعلق بخواد دیگه و اون مشابهن صفت یک مستر از جنس تشرق است مستر از جنس تشرق است میشه چی؟ تشراق و شرقن که شرق صدرلقن به این اعتبار کمان شرقت مفعول اون چیچیه؟ مطلق است. یعنی گلوگیر میشی؟ جلوگیر شدنی مانند سینه نوعشو بیان میکنه مم. یعنی فعل این طرف کما و اون طرف کما اگر از یک جنس باشه مثل تشراق و شرقت اون موقع مفعولا مطلب برسه شرقت صدر غنات مندم رو هم که ترکیب و قول اینجا چی از چیک ک کرده بود مذکر است معنس کسته تنیس و قال او هم قول این شاعر عکسشه، انارارت تول اخله مکسوفون به تا هوا و اقل و آسل هوا، یزداد و تنویرا یزداد و تنویرا اناره طول عقله اناره مستره چیه؟ اناره یونی رو اناره تن. یعنی ازا یعنی نفره یعنی روشن کرد اناره روشن کرد ازاعد اناره طول عقل یعنی چی؟ روشنگری و روشن کردن عقل عقل انسان برای انسان مسائل رو روشن کنه راه نمایی عقل انارط العق مکسوف مکسوف یه یعنی کسوف برداشته جلوش گرفته شده تاریک شده مثل خورشیدی که جلوش گرفته بشه و تاریک شده مکسوف به تو هوا به تو متعلق به چیه؟ میگه نورانیت عقل نورانیت عقل کسوف برمی به توعه. یعنی چی؟ پیردی کردن اطاعت به طاعت و اطاعت کردن چی؟ هوا و عباس. یعنی عقل انسان سالم نیست اگر اون انسان دنبال هوا و عوض به توعه هوا الان اناره طول مضاف و مضاف لای لعی مبتدام مکسوفون چیه؟ خبرشه به متعلق به مکسوف اضافه شده به هوا همینجا شاید مثاله اناره تای تنیست داره معنیسته از عقل مزکر چه کرده؟ کسبه تذکیر کرده به چه دلیل؟ به دلیل اینکه که خبرش مکسوفون اومده و مکسوفتون خبرش چی اومده؟ مزکر اومده چون میدونید الان داخل اون مکسوفون یه زمیر چی, چی هست؟ هوه که رابط خبر است به مبتدا حالا میشه هوه برگرده به اناره ما این که بگیم اناره چی شده؟ مذکر شده و الاهو که بهش بر نه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ما بگیم چه نورانیت عقل کسوف برداشت چه بگیم خود عقل نورانیت لازمه عقل ملزم یادتون باشه تو ملت ابراهیم من همینو گفتم که خیلی موقع ها هست ما یه حکم رو به لازم نسبت میدیم خیلی موقع ها به ملزوم یه بار میگیم خورشید ما رو گرم کرد ملزوم گفتیم یه بار هم میگیم چی حرارت خورشید ما رو گرم کرد اینجا نسبت دادیم به چی گرم کردن خود میگه به لازم و هر دو درست آه. یکیش میشه حقیقت یکیش میشه چی مجاز اونجایی که میگیم حرارت خورشید ما رو گرم کرد میشه چی؟ حقیقت حقیقتاً حرارت کرد اونجایی که میگیم خود خورشید ما رو گرم کرد میگیم چی؟ مجازه منظورش حرارتی اینجا بگیم عقل مکسوفه میشه مجاز بگیم نورانیتش کسوف برداشته دیگه نورانیتی وجود نداره میشه چی؟ لازم اومد و عقل و آسل هوا آسیه چی؟ سرکش مخالف و عقل انسانی که آسل هوا عقل اضافه شده به آسی آسی به هوا عقل انسان آسی هوا و هواسش عقل و آسل هوا آه. یه نفر با هوا و خودش مخالفت کنه عقل یک چنین آدم چی میشه یزداد یعنی زیاد میشه هفزون عقلش روز به روز رشد میکنه از چه جهت رشد میکنه یعنی حجم عقلش بزرگ میشه میگه نه تنویرن تبیزه از جهت چی از جهت نورانیت دادن انارتن از جهت تنویر و از جهت روشنگری عقل انسانی که مخالف هوا و هوس خودشه روز به روز پزونی پیدا عقلو و مبتدا اضافه شده به آسی آسی به الحوا یزدادو فیل زمیر فایلش که برمیگرده به عقل رابط خبره به مبتدا تنبیرن هم تنبیز تمیز نسبتی بعد یزدادو چی بوده؟ جو... چه سیقه چه بابیه؟ ازداده یزداده یا... یز چی بوده؟ چه الالتی شد صورت گرفته؟ خ بوده خب چی بوده؟ افتعال ازد از بوده ازد یاش قلبه به علف شده شده ازداده بچه را تا تبدیلی به دال شده؟, دا دا شده؟ چون فاولفلش این صرف دیگه ما کار نمی‌کنیم ها بعد کار کنیم کنید ها خب تمام شد شرط اینکه مضاف از مضاف کنه ده کسب تذییر یا تهنیس کنه چه بود اینکه بتونیم مضاف نه رو جای مضاف کنیم و من و از اینجاست یعنی چی از اینجاست یعنی از اینجاست که این شرطو کردن و من ام. و از این جهد که شرط شده مضاف بتونه جای مضافون لای رو بگذاریم امتنه هست ممتنه هست امتنه هست یعنی غلط هست غلط است این مثالی که میزنیم چرا؟ چون نمیشه مضاف رو جایش مضافون لای کزار قامت غلام و این مثال غلطه باید دیگه چی؟ قام غلام خود هند استاد آیا دوتا جمله با هم صد درصد متباین میشن یا نمیشن؟ میشن. یکیش میگه غلامش استاد یکیش میگه خودش استاد این دوتا یک معنا پیدا نمیده. چرا به دلیل اینکه غلام نه جزئی از هنده و نه لازم هنده لذا به این دلیل ما نمیتونیم مضاف رو داریم و مضاف رو نینجا شید تمام شد از ثانی دومه از مجروران از ثانی المجرورو به الحرفه اونی که مجروره به چی میشه؟ حرف جر و قوه مانوس به علیه شیعون به واسطت حرف جر ملفوزه من و اون مجروره به حرف است که ما چیزیست که نصب ایرائی هشه مثلا شما مرار تو به زیده به زیده الان زید قفت ما نسبه ایرائی چیزیه که نسبت داده شده به سوی اون چیزی چی بهش نسبت داده شده؟ مرور مررتو نسبت داده شده به کی؟ به زید زیدیکی مجبور به حرف جرل حالا واسطه بین این دوتا چی بوده؟ مفهول به واسطه درست میکنه دیگه به واسطه حرف جرل ملفوز اونم به واسطه یک حرف جری که چی شده؟ تلفظ شده مذکوره مشخصه؟ <تصحیح> <تصحیح> پس در به زیدن چی نسبت داده شده؟ مرور به زید اونم با چه واسطه ای؟ با واسطه ای حرف جری که چیه؟ مذکور این حرف جر مذکور رو گفت تا اینکه منصوب به خافز چی بشه؟ خارج بشه در منصوب به نزر خافز شما نسبت دادید بهش اما به وسیله حرف جر چیه؟ مقدره دیگه بهش نمیگن جار و مجرور دیگه مجرور نیست برکه میشه چی؟ منصوب میگه مجروره به حرف اسمی است که نسبت داده شده به سوی او چیزی به واسطه یک حرف جری که مورد تلفظه و مذکره. حالا حروف جر چند تا میگه وله مشهور من حروف الجر 18 حرفا. مشهور از حروف جر چند تاست؟ است؟ تا. شما چند تا خوندید تو عوام؟ 17 تا. درست شو. و اونجا معانی اینها را هم ما گفتیم اینجا دستبنده میکنه دستبنده جدیدی میگه سبعتون منها تجر رو از ظاهر و المزمره تا از این چهارده تا سبعتون منها تجر رو جر میدهند از ظاهر و المزمره یعنی چی؟ یعنی جر میده هم به اسم ظاهر هم به زمین فرقی باورش حالش و وحیه و اون هفته کدوم هاست؟ من الا ان علا فی الباء الان مشخصه معلومه دیگه ما میتونیم بگیم سرتو منار منر اله الكوفه ها و میدونیم هم بگیم مر اله الیه علیه عن زیدن علیه اللهم الله علیه و آله به و سب اتون منها هفته دیگرش تجر رو از ظاهره فقط فقط چی میکنن؟ اسم ظاهر رو جر میدن کدوم است؟ وحیه، منزو و موز یادتون هست یا نیست؟ این منزو و موز رو تو عوامل خوندیم که زمان رو درست میکردن ها منزو و موز و تختصانه به زمان و اینها مختص به چی؟ به زمان ما رعی تو زیدن منزو یا مز یومل جمعهت مشخص مم. که میگفت اگر به معنای چی مازی باشه به چه اگه به معنای حال باشه به معنای به معنای حاضر مشخصه خب میگو مثالش چی بود ما رعی تو زیدن موز یومنا منزو یومنا و تختصانه به زمان و مختص این این دوتا به چی؟ به زمان غیر زمان رو جر و ربتن روبه یادتون باشه؟ گفتیم که متعلق هم نمیخواد و این چی رو جرمی داد؟ نکره محصوفه رو ترکیب هم بهتون گفتیم روبه براجلن صالحن اندی ترکیب کردیم روبه براجلن صالحن لغای تو رو ترکیب کردیم اونجا سه جور چار جور ترکیباتش رو گفتیم روبه تختست رو به نکرته الموصوبته مختص است به نکره موصوبه. رب تال القرآن ول قرآن و یلعنه یعنی رب انسان تال القرآن موصوبش افتاده ول قرآن و یلعنه جمعه حالیه اون رب انسان تال القرآن لفظاً مجبور به رب مبتدا چیه؟ به نکره تا چی؟ میگه وطا و تختست و به اسم الله تعالی تا بین حروف قسم مختص است بکی؟ به خدای تعالی به لفظ الله تلاهه نعکیدن نه اصنام اون دوران دارد. تلاهه تفت و تذکر و يوسفن. پسران یعقوب به یعقوب گفته و تا تختست و به اسم لاه تا و حتی ولکاف ولواف ولواف حتی و کاف و واف اینا چی؟ لا تختست و به ظاهر معید اینا به زمیر داخل نمیشن. اما ظاهر معینی هم مثل الله یا زمان یا نکره موصوفه برای اینها قابل تصور نیست و هر اسم ظاهری میتونن چی بشن؟ داخل شن. و حتی و و لا تخت اصب ظاهر انو و رابع نوه چنده؟ چهارم او رابع مایرد و منصوبن این حروف جر رو من دیگه رو معانی و ایناش بحث نکردم چون تو عوامل ما حساب رو بحث کردیم بر شما بود که برید اونجا رو نگاه کنید، مطالبش رو خلاصه کنید، در اینجا بحث کنید. بکشید مطالبش رو به اینجا، هر کدوم دو سه تا خط میشه و حسابین روی مطلب کار کنید. بعد این دو رو به هم ببندید تا بتونید با تمرصت و تمرین این مطالب رو تو ذهنتون بسازید. این نو ار رابعون جلسه 17 الحمد و <تصفيق>